الله رحمٰن الحمد راب رب و صلّ الله على سیدنا محمد و آلہ اکرم. آمین. سلام. آمین. سلام. الفرع الثالث و الخمس فرق چندم فرع از چندم سگوم از چمبون از <تصفح> <تصفح> <تصفح> الفرع الثالث الخمس فرق سوم خمس يجب الخمس في اشياء خمس در خمس در چخ آه در هفت چیز واجب است وحیه یعنی همی سرغت یا یا هم هفت چیز یک ارباح و کسب و یا همون سرمایه به دست آمده یا همون نفعی به دست آمده توسط کسب و تجارت آره اینجا دقت میکنن ارباح ربح فایده فایده وحیه چی منون داری؟ وحیه یعنی و آن زمیر هست برسیز. چه اسم شاهره هست؟ سرمایه زمیره زمیر سرمایه به دست آمده آه سرمایه توسط کسب و تجارت دقت میکنیم وقتی وقت ما یک سرمایه اصلی داریم این سرمایه اصلی ما خونسش داده شدن روی این سرمایه اصلی کار می مثلا فعلاً بود یک ید افغانی در سال بعدی همه زمان شد یک ساد و پنجه درست؟ سرمایه اصلی ما پاکم یعنی پاک کرده بودیم قدرم یعنی پاک یعنی هم آره اونو پنجه هزار افغانی که بعدا به دست آمدن فقط خمس روی اون می آید بعد این دفعه که پاک کردیم شد یک ساد و پنجه پاک کردن در سال و آینده در سال و آینده بازم دوش کار بینید دو دون میل لگ یک سال پینجش کبلا بود نه؟ او هیچی فقط یک لگفهانی شد شد؟ پس اینجا در عربا حلق اصل و تجاره حسنه یعنی در خودم فایده چی، نه در اصل مال به شرطی که اصل مال پاک شده باش از اول دارن اگر پاک شده نباشه ما حق کار رویش و حق تصرف با اون رو نداریم این باشه در صورتی که اموال ما پاک شده نباشه حق تصرف با اون رو نداریم حتی اگر خانه باشه فرش باشه کالا باشه پس بنابراین اگر یک چادوره یک لباس یک امامهه یا یک فرش خمسش جدا کردن نیست، نماز خاندن در آن بچاره مشکل کرده اینی تا قضیه هم مثلا باکرگی هست؟ نه که استفاده می کلگیشون کلگیشان، دفعه اول هم زالف تا بعد از دفعه اول هرانچه که پاک شده بود، اما گفتیم پاک شده دیگه بقیهشان هرچه که استفاده می کردیم در حال استفاده بود هیچی فقط خامل چیزای که اضافی هست می بردونم اگر می لباسایی که مثلا داریم از و باشد به صاب کدن از او را افته شدن روز را رو در نظر می کنیم بایدان که آدم می این تخمینی به ببین حد Uh, مثلا در لباس یک لباس داریم خود آدم میگم کمی 500 افانی در نظر میده واقعا اگه یک نفر خریدار به بگیم رو در 500 افانی میدهدیش یا نه اگر واقعا 500 افانی میدهدیم در اوزو ده خوب پس قیمت 500 اگر نه نمیدهدیم معنیش اینه <تصفح> که مثلا بعضی ها کامل رو نو جدید میخنیم باز میگیدیم یک پوش که اگر سال سال برش تعلق نگیرد نه تو نیست ببین هر چه که اضافی بود داره چه آدم بی پوشه چی نداره اضافیش نسب نشده آه اضافیش ایچه سه چهار دفعه خب اونو سه چهار دفعه که شوشتا شد تا زمانی که داشت شستا میشد یعنی میکوشیدیم ندارد همین که از بدن انداختیم به دیگر گفتیم نمیکوشیم معنی شده که اضافی شده خانمو که اضافه شد، اگه ارزش داشت، مثلا ده خانه ارزش داشت و اینو ده خانه، ایتا باید به ساخت. خواه میدیم؟ آه، اینال خانما برین... نگاه کنیم برین بکس های خورا کنیم که چند دانه چادور به ایستفاده دید. خواه. تمام شد پس ارباح الکسب و تجاره خود سرمایه اصلی نه بلکه فایده اش نه عبرلس اومده درست این یک دو المعادن معدن ها در افغانستان معدن هست ها از جمله معدن که بدست مردم ما و جمعه معدن زغال سنگ هست مردم های دیگه یا در اختیار مردم ما و شما هست نیست؟ آسیرش خب هر چی کسی معدن داره باید خمسش یعنی یک پنجمش رو جدا کن سه الکنوز گنج ها گنج گنج هم داره چار المال الحلال المختلط بالحرام ما مال حلال داشتیم ولی از بدی قضی قدیق مال حرام مختلط شد جوشت. یک جای شد مخلوط شد آه با حرام یک جای شد مثلا برای نمونه ما گندوم داشتیم گندوم پاک کرده. برست سر سالش پاک شده خب از اون طرف یک گندوم دیگر اونجا بود که چی؟ ناپاک بود یک باره این امو چی میگه؟ بوجه ما یا تیکه شد یا افتاد توسط زلزله هر دو گندوم یک جا شد برسو؟ ناپاکی که مثل نمیگه. آره اینجا؟ مال حلال آره مال حلال یک جا شده با مال حرام اینجا باید خمسش جدا کرد که پاک شود کنه آنم او رو جدا کنیم باز, باز, باز. یک جایی شده دیگه آزی. میگیم نه چون با هم مخلوط شده ما ازن تصرف در مال جدا کردن نداریم. اول باید خونسش رو جدا کنیم که اون قسمت که حق تصرف نداریم او خارج شد. بقیه اشکه مال شخصی خود دارم از باز استفاده یعنی ببینین خدا برای فقرا در صروت اغنی حق قرار داده آره این توریز. حق قرار داده معنی چیست؟ معنیش اینه که اگر کسی که روی اموالش خمس میاید خمسش رو نده مثل که حق فقران مثل... نه دیگه در حقیقت مال کسایی که به اینوان فقیر مطرح میشه مال از اونا رو داره برست. مال دیگر کسی بدون ازنش که خورده نمیتونیم؟ حق دیگر آره. حق دیگر آره. این هست. آره. برای خانوم ها یک توصیه را میکنیم. اینکه شوهرانشان را کمک کنند. در قسمت کردن همه مسائل شرقی هست. چون بدون شک نقش یک زن روی یک مرد خیلی برجسته هست خیلی کافیز یا خانم تشویق کنه شوهرش بگه که این کار انجام بده بودن خانم های واقعا محترم و مکرمیه که مردان افتاده رو به های آسمان شاید بلند کرده تاجه میشه و همینطور یه خانم میتونه یک مرد رو به زمین هم بزنه یک واقعی هست آره چون اگر این کار نشه، حتی سوال کرده بودم خانومش در خانه شوهرش، شوهرش مالش رو جدا نکرده، آیا این خانوم میتونه از اموال این شوهرش شوهر استفاده کنه با وجود که نفقهشون سر شوهر واجب بوده، اینجا میگم در صورت که حاکم شرق به این خانوم اجازه بیده میتونه از مال شوهر خونس نادر شدهشون استفاده کنه اگر که ازم نده نمیتونه نمیتونه از حاکم شرق باید ازم کنه متوجه شده؟ این طور است پس بنابراین سعی کنیم چی میگیم؟ مردم ممکنه خونسشون رو جدا نکنن و چی بسا خانوم هایی که خودشون مال شخصی دارن نفته مخصوصا که در خانه بعض خانم کار میکنن دیگه وانا مال های شخصی خود رو متوجه باشن یه خب یکی دیگه مال شوهر اگر جدا نکرده بود ما نمیتونیم حق فقرار بخوریم با این یعنیمان که خب خرجت مثل شوهر واجب باید این جدا کن. خب بله این جدا ولی فعلا که مطمئن این جدا نکرد پس نمیتونی ポジティブ وظیفه خب خانم انقدر به ماروف وظیفه خانم کمک کردن شوهر بله بالی بالی یاری کرد درست یادو خاطر داد متوجه شدیم آره اگر یا خانم این کار رو نکنه دو مشکل برش پیش آمده. یا شوهرش رو انقدر ماروف می‌کرده دو مال حرام کرد متوجه شدیم؟ یعنی <تصفيق> مشکلی هست قطعا نمید خب دیگه پنج <تصفيق> المجوهرات جواهیر خواه؟ این جواهر چطوری؟ علتی جواهیری که یحصل علیها بدست دست می آید این مجوهرات بالغوص فی البحر در غواصی کردن به بحر و درگیان آم بازی کردن آه. نفر رفت درون بحر وارد شد دور به دست آمود و خسیل میشه به دست آمود نفر رفت آم بازی کرد صدف رو به دست آره شش غنائم الحر مسلمانان رفت جهاد کرد غنایم جنگی آ جنگی به دست آورد این هم خمس هست هر به معنی جنگ غنایم جمع غنیمت است غنایم های به دست آمده از جنگ غنیمت جنگی عنیمت جنگی هم. تمام شد؟ هفت. الارب. التي يشتريها الكافر و, و من المسلم زمینه که کافر زمی زمی زمی زمی زمین. لطی چی رو من دارم؟ التي که يشتريها میخرد همون زمین را کی میخرم؟ الكافر و زمی. کافر زمین یشتری ها میخرد اون زمین مشتری همون خریدار دیگه میخرد خریدار نموشه نه که میخرد کافر زمین او را میخرد از کی میخره اون زمین من المسلم از آدم مسلمان ببینیم کافر چند نو دو نوعش را حالا میگیم. یک کافر حربی، دو کافر زیمی کافر حربی یعنی کسی که به محاربه و به جنگ پردازه. کشتن چون این کافر واجب هست. کافری که قد مسلمان جنگ میکنه کشتنش واجب است. اگر نکشیم خود ما رو مکشیم. کافر حربی؟ درست آره. کافر حربی. سعیشون؟ کافری که قد مسلمان جنگ میکنه باید مسلمان رو بکشه اگر نکش بودیشون میکشیدین میکشیدین جنگ میکردین کافری که با مسلمانون میجنگه ها دو کافر زیمی خب اینو میگیم ساده میگیم کافر زیمی کافر زیمی یعنی اون کافری که در ذمه مسلمانان زیمه را چی؟ چیه؟ آه، مثلا در کشور ما، با کشور مسلمانیم، با کشور مسلمانیم، باید سندوها میدونیم احسند، اونا کافر زیمه هستن قد مسلمان جمع نمی کنند نباید کشت آره نباید کشت نه تنها نباید اونا را کشت که از ناموسشان، از اموالشان از خونشان باید دفاع هم کرد زیمه آجا آجا؟ زیمه؟ زی در اون جفت که؟ آنه نوشته که کتاب دارین آخره، یعنیم این نوت گیردون در کتاب چه؟ کافره که در زمه مسلمان هست خب، دیر نشن خواهد، اطوره جمله کامل رو ننویسیم تمام شد دیگه پس خمس در چند چیز واجب میشن؟ چی. یک ارباح الکسب دو معادن سه کنوز چار مال الحلال المختلت الحرام پنج مجاهرات شش غنائم هفت زمینیه که مسلمان چی از مسلمان یک کافر میخورد مثلا هندوها آمد از یک مسلمان زمین خرید نمو زمینی که میخره باید یک پنجمش رو در مسلمان فقی توباره کسبید این. باید بیادی باید, باید. باید. باید. نه در زمینه چی؟ در زمینه چیندی دیگه در زمین ببین در زمینه حکومت اسلامی است که هم از مال استفاده کنه هم از جان استفاده کنه هم از کنارش استفاده کنه اخبار خب باید بیادی درسته این تمام تا اینجا الفرع رابع از زکات فرع چندون چهارم زکات است تجب تجربه زکاتو و في تسعة اشياء زکات واجب است و تعلق مگرد به چند چیست؟ تسعان نور نور برس زکات واجب است و تعلق مگرد نور یعنی واجب است؟ نور و نور خب این نوره نور سه سه, سه سه درست شد؟ سه, سه خب سه تای اول خب الغلات الاربع غله های چهارگانه غله های چهارگانه این چهار چهار تا اینجا شد یکی از اون بعدشی کم میشه اولش الحنفر گندوم گندم دو اشعير جو سه، از تمر، خرم خرم از زبیب، الزبيب كشمش تمام شد پس چار مورد از امم ها درست شد ها ها ها شعیر، تمر، زبیب. در نمازی موارد اگر یک مسلمان داشته باشه زکات درش واجب میشه منطقه با شرطه که به حد نصاب بیرسه اینی گندم همه مثلا که این نفر خرمانو بالا میکنه هشتا سیدگه شوه باید از تو چیش اجدا کننه یعنی جب و خورما و کشمش چی را میکنید؟ اونای شیر هم همونطوره در تازه المساویل نگاه کنین هست انشاءاله خب؟ آره او چون او فعلا در بین ما و شما مورد اجرا نیست در کجا مورد اجرایی در منطقه در جایی با این معنی که ما و شما در اینجا گندوم کش نمونیم جا و فرما این هم که واضح نیست پس بنابراین زکات در شهر خیلی کم هست خیلی کم مخصوصا در قلعه جا اما در مناطق زکات هم لذا تفصیل اون تفصیل داره خب تفصیل دارم حد نسابش یعنی اما چیزی که شما گفتیم چند سر گفتیم؟ هشت واسه خب براش نصاب تاییم میشه یعنی یک مقدار مشخصه تاییم میشه در اندازه رسید باید چیش رو بشه از کم باشم نه لازم نیست واجب نیست خب دو ان نقدهیم میخوایم که دیر نشن ساعت 32 دو شده دو ان دو یعنی دو نو پول نقد, نقد. نقدی هست. یک از ده دو الف و با تدا و نقرا ها سه هب یا تلا ما نمیدونم هست؟ مطمئن تلا هست دارم؟ صلاة اسمش تناس خب طلا پس یاد بگیریم از این بابت طلا اینو استراونس امریشن دوتا ماملات کلمه دین ها تمام تا اینجا باره، باره، باره، باره. سه الانعا الانعام الانعام الصلات حیوانات سیگانه حیوانات سیگانه چهار پایانه سیگانه یاب ال ابل شطور دو البقر آه. سه الغنم غنم گزفن ایبیل ایبیل شطور تمام شد؟ وصلا الله على سيدنا محمد و آلها الطاهرين.